حکایت. یکی از ملوک عجم طبیبی حاضق به خدمت مصطفی صلی الله علیه و آله فرستاد سالی در دیار عرب بود و کسی تجربتی پیش او نیاورد و معالجتی از وی در نخواست، پیش پیغمبر آمد و گره کرد که مرین بنده را برای معالجه اصحاب فرستادهاند و در این مدت کسی التفادی نکرد تا خدمتی که بربند معین است به آورد. رسول علیه السلام گفت این تای را طریقتی است که تا اشتها قالب نشود نخورند و هنوز اشتهای باقی بود که دست از تعام بدارند. حکیم گفت این است موجب تندرستی. زمین ببوسید و برفت، سخنانگه کند حکیم آغاز، یا سرنگوشت سوی لقمه دراز، که ز گفتنش خلل زاید، یا ز خوردنش به جان آید، لاجرم حکمتش بود گفتار، خوردنش تندرستی آرد با.